کسانی رو که توضیح دادیم از بد به ورود روی خودشون اسکن هایی خروج هایی دقت بفرمایید اسکن هایی خروج هایی ورود هایی چی بگیم دیگه نمیتونیم زیاد توضیح بدیم خودشون میدونن متوجه شدن دستشون دستشونو بلند کنن خب کسانی که این اسکن ها رو روی قلبشون گرفتن نشونه ها رو دستشونو بلند کنن خب بلند کنی من بیشتر از اینا چرا بسیار خوب کسانی که روی سیستم تنفسیشون علامت گرفتن کسانی که روی مغزشون خب پس ببینید که منظور چی هست کسانی که از بد ورود تا الان بیماریهایی هایی داشتن که بهبود پیدا کرده دستشون رو کنن یعنی یه مشکلی دردی چیزی باش وارث شدن الان بینن نیست می حالا همه رو بگین چون میخوام صحبت بعد کنترل میکنیم دیگه کنترل اصف دوباره کردم رو میده هم یه ذر ناراحتم ولی الان رو میده تون میده ناراحت بود ولی الان ناراحتی ندارید اسپاس میداشتم اسپاس گردن اسپاس گردن بعد اینکه که الان گردن تون رقونه درسته منظور ببینید ما میخوایم منظورمون رو بگیم حالا با هم کار داریم این تحقیقات ادامه داره خب منظور پس اینه که اسکنی بشه اشکاله برطرف بشه درست شد یا نه؟ جانم معمولا رو چند بوده؟ صد و صد خب ما این گزارش رو زیاد داریم که چیز میکنم میونن که هشتاده یعنی منومش که هفتاده الانشون هشتاده خب بله الان تازه ناشتا نیستن دیگه میدونید و هر حال کنترل بکنید دوباره برای اینکه ما این تجربه رو زیاد داریم و شما کنترل بکنید ببینید که روی دیابت چطوری حالا شما توجه فرمایید شما روی پانکراس روی لوزرنده اینجا زربان متوجه شدید یا نشدید تپش و زربان روی این نقطه دارین خب ببینید او دقت بکنید مثلا در مورد یک بیمار دیابتی این کار که بشه چون لزرمده پانکراس یا اکار افتاده یا کمکاره حالا بستگی به نوع دیابت و نمیدونم این حرفا این هوشمندی میاد روی این پانکراس و لزرمده رو شروع میکنه به تحریک و ضربان پیدا کردن در حالی که پانکراس ضربان نداره که الان اگر که گوشی بذاریم دوستان پزشکمون گوشی بذارن چیست کنن؟ میوانن یه سده ضربان قلب هست یه ضربان لزلمده و پانکرست و ایشون الان اگر که قرنشون اومده روی هشتاد که تو زنگ تفیاز کردن. این در واقع خاطر تحریکیش که روی لوزالمده انجام شده خب ببینید پس صورت مسئله بود جواب و اینها چی شد داره معلوم میشه که دنبال چی میگردیم خب تا اینه که الان اصلا هممون یه ارتباط جمعی بگیریم و نتایج کلیتری رو با هم مورد بفرمایید خب شما اینو بفرمایید تا من نمودار رو اونجا بکشم شما بفرمایید دوستان گوش من بنده بیماری سینوسی داشتم میخوام ببینم درست میشه چون بیماری سینوسی بله سینوسام اشکال داره بله ببینید ما هیچ وقت اینجوری جواب نمیدیم ما آماری بررسی می‌کنیم. اولا توضیح دادم که یا این توضیح رو داشته باشیم که کسی برای درمان بیماری خودش اینجا نیامده باشه گفتیم اینجا کلاسه ولی بعدا آمارمون که جمع بشه روی غذایهی متوجه میشیم یعنی نتیجه میگیریم که هیچ چیزی نیست که بگیم این نمیشه یعنی یکی از تغییراتی که باید اتفاق بیفته ریست کردن ذهن ماست مبنی بر اینکه هر چیزی امکان دارد یعنی مجموعه چیزهایی رو که ما پوستر میگذاریم اتفاقاتی میفته مبنی بر اینکه که اصلا جرعت نمی کنیم که بگیم چی میشه چی نمیشه این دوستان دو شاگرد کلاس شاگردی کوچولو داریم خب ماشاءالله بسیار خوب از کنم خدمتتون لذا اتفاقی که میوفتی حالا در مجموع تا انتهای دوره تا بعد دوره یه طوری میشه که شما دیگه جرئت نمیکنید بگید میشه نمیشه یعنی اینو از شما در واقع باید بگیریم ذهن از نو ریست بشه هر چیزی امکان دارد خب در این مورد یکی از مواردی خیلی قشنج جواب میده و سریع همین است که شما فرمودین ولی افته در پرانتیز من گفتم تا ببینیم نتیجه تحقیقات شما چه چیزی رو میگه نه نتیجه تحقیقات ما قرار شما به ما پاسخ بدید نه ما به شما توجه فرمودین؟ خب حالا اسکن یک موضوع رو بگم و بریم دنبال یه تجاربی ما تجربه رو که خواهیم کرد یه روند مشکلی که وجود داریم میاد به یه اوجی میرسه و بعد میاد کاهش پیدا میکنه. در این اسکنه که صورت میگیره ما داشتیم اینجا میومدیم یه دفعه این مشکل که مشکلی که داریم به یه اوج میرسه خودش رو نشون میده بعد شروع میکنه کاهش پیدا میکنه بعد اینجا تموم میشه امده یه اسکن ها اینطوریه چند نفر داریم که تا اینجا اینطوری بوده یعنی از ابتدا اومدن مشکلی اومده رو چند نفر دستونو بلند کنین دوستان دستشونو بلند کنن حالا این بالا یه خورده باشین تا بینیم که چی میشه <laughs> خب در موردی میتونیم اینطوری بگیم اگر این محور رو بذاریم شدت این محور میشه زمان خب یعنی زمان و اون محور شدت اما یک دسته دیگه میتونه اینجوری باشه یعنی اصلا به اوج نرسیده شروع کنه کاهش و از بین رفتن این دو دسته رو داریم عمدتا این اونطوریه و اقلیتش هم به این صورت چند نفر داریم که اینطوری اینجوری شده یعنی رو به کاهش خب چی بوده شما خب کمرتون دیگه درد نمی کنه بسیار خوب البته ما تست مخصوص خودمون هم داریم ما بسیار خب جانم بالا پایین بالا پایین اونا نموداره داره که تو هفته بعد می‌کشیم کسی که نوسان البته جزوه‌تون رو به دقت مطالعه بکنیم چند تا نمودار اونجا هست اون نمودارها رو نگاه کنید ببینید با کدوم مطابقت میکنه خب بعد حالا هفته بعد من این نمودارها رو توضیح بدم خدمتون خب اگر که اجازه بدین با توجه به این اطلاعات مقدماتی که به دست آوردیم بیایم بریم یه تستی انجام بدیم در این تستی که انجام میدیم دوستان عزیز خودشون رو زیر نظر میگیرن بی نظر هیچ کاری لازم نیست انجام بدیم برای اینه که ما توی این تجربه ببینیم و بدونیم که صرفاً هوشمندی کار کرده خل سلاح میشیم خل یعنی اینکه که هیچ کاری خودمون انجام نمیدیم مثلا کار مثل فصل کنیم که مثلا ممکنه ما تو این اسناد دعا کنیم مثلا بگیم خدایا ما رو شفا بده بعد کار انجام میشه بعد در این صورت میگیم که عجب نفسم حق بود عجب دعای من خب پس دعا خوبه دعا درمانی دعا درمانی حتی روش کار علمی هم انجام دادن به اثباتم رسیده ولی ما الان نمیخوایم اینو داشته باشیم ذکر و منترا باش مخالف نیستیم ولی اینجا الان میگه که خوب باز ذکر گفتم و همون نفسم حق بود و از اینجور چیزا این رو آره هم نمیخوام تخیل تصور تلقین، جملات تاکیدی. و مداخله در اسکن یعنی مثلا اگر من دلم درد میکنه زخمه میده چیزی هی چیز بدم که برو رو, میده، برو رو میده برو رو میده خب این اختلال ایجاد میکنه این هوشمندیه مثلا در یه همچین موردی میخواد مثلا فرزن اگر زخم میده است ممکنه اول بره از روان شروع کنه ممکنه بره از ذهن شروع کنه ما فیزیکال میبینیم اون که اینجوری نمیبینه که اون ریشه رو میبینه ریشه رو میدونه بنابراین ما وقتی که هیچ چیز میکنیم گراد میدیم و هیچ نمیدونم میخوایم اونو هدایتش کنیم اختلال ایجاد میکنیم لذا اگه اون هوش کله ما دیگه چیکار کنیم کنار بشینیم بذاریم کارشو انجام بده بنابراین ما هیچ تکاپوی فکری نداریم هیچ نمیخواد کار خاصی انجام بدیم لذا ما چگاه می کنیم؟ ما فقط شاهد نظاره می کنیم ببینیم که چه اتفاقی می افته همینو و سلام درست شد؟ اشکرم که تعریف کردیم مسئله دیگه هست چیان؟ در این صورت مورد شناسایی قرار می گیره کسانی بودن که مشکلی نداشتن برای اینجایی رفعه دیدن که یه مشکلاتی اومده رو داریم؟ بله خب یعنی اصلا خبر نداشتن بله که حالا بعدن هم به ضرر ما تمام شه ما رفتیم این کلاس درد گرفتیم <تصفيق> رفتیم این کلاس درد گرفتیم رفتیم این کلاس دسترد گرفتیم زانودرد گرفتیم در حالی که باور کنید از این کلاس نیست اسکن این چیزی رو که شما اطلاع نداشتین و ممکنمون سه ما دیگه یه ما دیگه مادیه ما دیگه این آرزه رو متوجهش بشید اینجا آورده رو یعنی به نفعتون تموم شده و بعد یک موضوع رو بدونید وقتی شناسایی کرد حتما روشم میخواد کار بکنه دقیق درمون احساس آرامش ببینید کسانی که احساس آرامش رو پیدا کردن دستشون رو بلند کنن کسانی که استراب اومده رو استراب اومده رو یعنی یه طوری که ناب سامانی کسانی که از من تنفر پیدا کردن دستشون بلند کنن. نه جدی، این بحث جدیه. کسانی که یعنی میگم پاشم منو خفه کنن. این دوستان عزیز به تشوش دفاعی هم نیاز دارند. حالا بعدا بهتون میگم ماجرا چیه. یعنی این دوستانی که دستشون بلند کردن به تشوش دفاعی هم نیاز دارند. خب کسانی که ترس های دوران کودکی اومد رو دستشون بلند کنن ترس های دوران کودکی کسی نداشتیم بسیار خوب ارتباط برقرار کنیم ببینیم پیدا میکنیم یا نه ببینید دوستان بستن چشم تأثیری تو این قضیه نداره ولی چون عمدتا ما حواستمون پرت میشه به این ور اون بر و این مثلا یه مقدار نیازی به حواس جمع داره بنابراین تو این ارتباط بهتره چشونو ببندیم اما از اونجایی که ممکنه کنچکاف باشیم که ما اینجا چیکار میکنیم اینا هی بگن لایچ چشمیتون رو باز بکنید من قول میدم همینجوری که اینجا باز شدم، اصلا تکون نخورم شما خیالتون راحت باشید چشمتون رو ببندید کاملا اشکنتون رو دنبال بکنید نه زیرچشی نگاه نکنین کارتونو بکنید حواستون صرفا به خودتون باشه جانم جانم چه چیزی باعث این اسکن شد یا میشه خب دوستان جوابتون چیه چه چیزی باعث این اسکن شده خب پس سه ساعت چی داریم میگیم <تصفح> احب نداره بریم داخل ماجرا بعد با هم صحبت میکنیم احب نداره فعلا بزنیم بشه شده دیگه شده درسته بعد با هم صحبت میکنیم هم گردن خوب شده داره روی تیروئید کار میشه تیروئید میدونیم غمباد اون ده که فهمیدین اون تنهایی ها و حوز و اینا روی تیروئید اثر منفی میذاره حالا اونم که بعد اسکن شروع شده دیگه خیلی خوب حالا بریم داخل ماجرا ببینیم چیه شروع میکنیم بعد از این ارتباط سوالا رو جلسه دیگه نه، به اجازه بدین الان توجه بفرمایید ما یک بحث کاربری داریم یک بحث اپراتوری داریم یه بحث اینه که الان شما رو میخواییم ببریم زیر اسکن شما کاربرید به اصلا داریم رو این کار رو تست میکنیم اما هفته دیگه شما اپراتورید. یعنی حالا شما میخوایید از این هوشمندی استفاده مستقیم بکنید الان مورد استفاده هستید هفته بعد شما میخواد استفاده کنید درست شد یا نه لذا ما الان این تجارب رو میریم اسکنو تجربه میکنیم همه کارا اما هفته دیگه شما به وضعیتی میرسید که خودتون از این هوشمندی مستقیم مستقل دیگه بدونیم اینکه کسی حضور داشته باشه خوده خود شما این هوشمندی رو به تست بکشونی منظورم درک شدین. اونجای لایه محافظ هست اونو میگیرید یه ماجراهایی هست همونا رو طی می‌کنیم هم همون موقع امضا میکنیم عجله نیست هفته دیگه اما الان تا هفته دیگه در ارتباطات نزدیک و دور قرار میگیریم یعنی از امروز که از اینجا خارج می‌شیم ارتباطات راه دورمون شروع میشه بذارید شما تست بکنید تجربه بکنیم ببینید که چیکار می‌خوام بکنیم درست شد، پس این راه نزدیک راه دورم ساعتای به ما میدیم که من توضیح میدم ارتباط برقرار خواهیم کرد از راه دور این هفته تجربه راه دور رو با هم دیگه خواهیم داشت خوبه یا نه؟ بسیار خوب عجله نیست برایم اونو هفته دیگه خوب حالا پس شروع میکنیم ما بسته ببینیم که در پیرامون ما درون ما چه خبره فقط شاهد در یک در هزار بیرونزی هایی هست که شما بعدا متوجه میشین که این بیرونزیا چیه این افراد چه مسائل چه مشکلاتی چه مسائلی و اینجا ما فقط بایستی یک زمان باشه که این بیرونزی تکمیل بشه و در واقع این خودش یک درمان است که در مورد مشکلاتی که این عده دارن که درمان پذیر نیست خب آشنا بشین حالا این شانس شما این کلاس دروایه که از این یک در هزارها رو داشتین اب نداره دوستانه که دو همین فاصله رو قلبشون علامت گرفتن درشون رو بلند کنن بله البته حواس خب یه بار دیگه اندیا میدیم خب شروع میکنیم خب خیلی ممنون متشکر خب دوستانی که روی قلب علامت گرفتن درشون رو بلند کنن خب این علامت ها مثل تپش، تیر کشیدن، دربان زدن و اینجور مسائل بود حالا بعضی از دوستان سابقه قبلی داشتند بعضی ها هم ممکنه نداشته باشند و این حالا کاری صورت میگیره دوستانی که روی سر بله، بله دوستانی که بله، از یارم قدمتون که این ماجرا ممکن ممکنه قبل هم از اول جلسه از اول کلاس اینجا میدام پیدا کنه خب دوستان که سیستم جانن. بله حالا یه سنگینی یه سنگینی چیزی میاد بیرون در واقع خب روی سیستم تنفسی و روی اما و عشاب و برحال میده و کبد و کلیه و اینها چه نفر؟ خب و دست و پا و نمیدونم زانو و این حرفا کسایی که جریاناتی رو در بدن متوجه شدن؟ بله کسانی که خروج ورود متوجه شدند، بله دوستانی که نور و رنگ و اینها رو متوجه شدند بسیار خوب حالا داریم کسی که تو همین مرحله متوجه هست مشکلی از مشکلات شده باشه تو همین رابطه که توضیح دادیم بله خب این تا نمونه گوش بدیم تا منظور از اسکن رو بهتر پیدا بکنیم خوب کدو میکرد دوستان بودن؟ یه کمردرتی داشتم که بعد از اسکالان احساس نمیکن دیگه احساس کمردرت نمیکن مثل اون موردی که اونجا بود خب بله 90 درصد مثل چه احساسی نداشتم این چی هستم بله اینا رو من توضیح میدم که 90 درصد نیست فسان یه سوال دیگم داشتم غیر از این اسکالان ولی بله. پس شبت که راضی به که چه اصراری هستش که این مسائل حالا علمی یا عرفانی رو شما ارتباطش میدین به مذهب و موقعی که به مذهب مین می ارتباطش بودین چون اطلاعاتون کافی نیست یه چیزاری غلطی رو انما من میگم که ایک دوتشو ایک راجب به مسئله زکات و خومس غرزالحسن که فرمودین اینا هر کنم برا خودش یه تعریفی داره و هیچ ربطی به اون مسئله انفاق نداره اصلا هر کنم برا خودش یه تعریفی داره خب حالا میتونم بله بگم ما هم انفاقو که جدا کردیم حالا جدا کردیم ببینید حالا خمس م. اصلا یه است که حالا کار ندونیم بعضی از مذاهب مثل مذهب شیعه یه جوری تعریفش میکنن. ولی کلا در مورد غنایم جنگی اصلا هیچ ربطی به اون نداره که یک پنجم اونو حالا به خاطر یه مسئله خاصی هست که میگن باید یک پنجم اون غنایم جنگی رو استثنا تقسیم کنه اصلا اون خودش یه نوع زکاته حالا اگه بخوام بگیم میان نصاب زکات که تعریف‌های داره اصلا این چرت نداره به مسئله حالا ما ربطش میدیم و حالا یا مسئله, مسئله مثلا بله حافظ شما البوم میکنید حافظ اصلا عارف نبوده هیچ اصلا جزء رندان بوده و دقیقا مسئله که بشماره. خب جزء رند رو تعریف کنیم ببینید رند رو مسئله می و چیزایی که صحبت میکنه دقیقا همون چیزیست که داره میگه این نیست که حالا می مثلا برکات آسمانی باشه که از کنم خدمتون که حالا من نمیخوام این بشه بحث این که آیا حافظ اولا تعریف رند چیه شما رند و تعریف بفرمایید این یک تعریف بفرمایید البته آگاهی من زیاد نیست همون چیز که فقط عزه بده ببینید رند و ببینید کسانی بودن در اون زمان که میخواستن در مقابل اون جور و ظلم اون حکامی که به صورت یعنی به نام مذهب میمدن مسائلی رو اونجا توی اجتماع به مردم، برای مردم ایجاد میکردن یه میدن که تقریبا میشه گفتش که مبارزه میخواستن بکنن بین اینا یه دسته ای بودن که به همون به بله اجازه بدین از کنم خدمتون که ارفان حالا البته من میخواستم اتصالاتی برقرار کنیم ولی دوستمون مسیر رو اجازه بدین اجازه بدین وقتی یک کسی سراحتن میگه اشتباه میکنید خب چون باید ایشون بگم به نظر من اشتباه میکنید برای نظر جمع ارزش خوال میشه ایشون فرمودن 90 درصد مثل من چند نفر مثل ایشون هستند اجازه بدین چند نفر مثل ایشون هستن احساسی نکرد اجازه دیگه. بدین حالا راجع به بحث لزومی پیش اومد که من خمس و زکات و اینا رو تعریف کردم گفتیم روزی آسمانی روزی زمینی این روزی زمینی این اینام شاملشه اما رند تعریف رند و سر سرکار داریم ارفان شناخته خب شناخته واقعیت، شناخته حقیقت شناخت شناخته چی؟ اگر ما شناخت واقعیت جلو بریم میرسیم به علم شناخت واقعیت واقعیت شناسی میشه علم کسی که شناخت واقعیت رو میره جلو به علم میرسه به تخصص میرسه میشه کاسب میشه واقعیت باز میشه میشه عالم کاسب و اینها رو میشه درست شد؟ بنابراین اگر از این طرف اینجا رو بیایم میشیم عالم کاسب و واقعیت باز میشیم اگر اینو بیایم جلو صرفا شناخت حقیقتو بیایم جلو یه بودی میرسیم به شیدایی یعنی کسی فقط به حقیقت نگاه بکنه باید سر از کو و دشت و بیابون در بیاره میبینه وجود داره نداره مجاز نیست و اصولا اگر بود حقیقت رو نگاه کنیم دیگه زندگی نمیتونیم بکنیم دیگه داد و معنی نمیده و صرفا هم تو واقعیت بریم که میشیم همینی که شدیم خب همینی که شدیم داریم میبینیم لذا این میرسه به شیدایی و اونم هم به همچی مطلبی میرسه رند کسی است که در واقعیت دنبال حقیقت میگرده در حقیقت دنبال واقعیت میگرده و قادر واقعیت و حقیقت رو به همدیگه تلفیق بکنه توجه فرمودین تلفیق واقعیت و حقیقت چیزی رو به دست میده که در دنیای عرفان میگن بهشت نقد حالا اینا رو با هم تعریف میکنیم من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود بعده فردای زاهد را چرا باور کنم و اینی که حالا این تعریف میشه رند رند کسی است که نه واقعیت و فردای حقیقت میکنه نه حقیقت و واقعیت بعد حالا بحثای دیگه ای داره که اگر هر کدوم جدا بریم چی میشه و تدفیق چی میشه که بعدن با هم میتونیم صحبت بکنیم من فقط اینجا اومدم بگم علاقه به اعترام حافظ به صورت من نمیخوام دفاع بکنم نمیخوام کلاس رو بکنیم کلاس اینکه یکی بگه حافظ برای می زمینه صحبت کرده ما که میدونیم در دنیا ارفان فقط میه از خوم وحدت الهیه حالا به هر حال من نمیخوام این بحث پیش بکشیم برای اینکه همینطوری میره جلو و گسترده تر میشه و حالا بماند که در این مورد سر جای خودش انشالله بتونیم صحبت بکنیم به هر صورت موضوعی که هست و قضیه که هست دیدگاه ما اون موضوعاتی که صحبت شد همه و هم مرتبط بود و دلیل داشت که صحبت کردیم برای این بود که بگیم کار زمینی سعی و کوشش پایشه و تازه وقتی به دست آوردی، باید چیزا شد تحت عنوان انفاق و زکات و این نیمتونم خمس و اینها رو بدی حالا کاری نداریم به شیع و اختلاف از که اون میگه قنمتوم یعنی قنیمت جنگی شیعه میگه نه قرمتون اون چیده که بهره گرفتی اون چیده که بهرمند شدی چون هر روز جنگ نیست که هر روز که ماجرا نیست ولی بحث درد ما هستن نمیخوایم وارد این اختلافات شیعه و سونی و این نقطه نظرات مختلف بشیم و ما میخوایم ببینیم که از ماه این قضیه میتونیم بهرمند بشیم اگه میتونیم استفاده کنیم اگه نمیتونیم همون لا اکراف به دینه و به, سلاح بگیم ما به دردمون، نمیخوره خداحافظ، خداحافظ هیچ اجباری به صلاح در مسئله پیگیری وجود نداره. و ما همه دوستان رو در شرایطی پذیر و بر حال افتخار اینو داریم که در خدمشون هستیم که اونها قبلا تحقیقات کرده باشن زیر برگ ای رو که شما امضا کردی نمیشتیم که ما تحقیق کردیم. میخوایم دیدید که امروز ما چند نفر رو رد کردیم نمیدونم دوسته که آخر اومدن تو چه تعدادی رو ما رد کردیم تعدادی که شاید تحقیق کاملا کرده بودم ولی گفتیم جا نداریم و حال دوستانی رو میخواستیم داشته باشیم که قبلا تحقیقاتشون کرده باشن دیگه توی کلیت قضیه مشکل نداشته باشن که حالا تازه ما مخوایم می چی هست تازه بخواهم بگیم میمه می خم هاست از این باده خم از اون باده تا نشکن این خم را هرگز نچشی آن را حالا بگذاریم چون ما چند تا ارتباط میخوایم داشته باشیم برای دوستان محروم نشن از این ارتباطات تا سر فرصت انشاءالله راجع به این, این مقوله بیشتر بتونیم صحبت بکنیم پس این ارتباطی رو که در واقع وارد شدیم اسکن از طریق هوش جمعی یا همون شبکه شعور کیهانی بود. یک ارتباط دیگری رو وارد میشیم اسکن از طریق نیروی کیهانی خب اون گوشمندی بود این نیروه اول توضیحات منو خوب توجه بفرمایید تا بعد بتونیم اجرا بکنیم دوستان دستاشون رو میتونن بگیرن البته توضیحات اول دقت کنید کمی دستاتون رو میتونید تکون بدید آروم آروم بعد ببینید دستاتون با چه نیروی برخورد میکنه و شما چطوری اونو پیدا میکنید درست شد؟ خب چشماتون هم میتونین ببندین که حواستون بیشتر جمع باشه آماده هستین؟ هیچی چیزی قرار نیست بکنیم؟ قرار ببینیم که یا چیزی هست یا چیزی نیست تموم شد شروع میکنیم؟ خیلی ممنون خب دوستانی که متوجه شدن درشونو بلند کنن؟ بله بله خیلی ممنون خیلی موسکر خب حالا جانم حالا مسئله نیست ببینیم ما از این چی میخوایم استفاده کنیم اجازه بدین ارتباط بعدی رو توجه بکنید حالا ما این ارتباط رو ازش استفاده می کنیم. بارد میشه نیرو میره یه جایی یه اسکنی انجام میده یه کاری انجام میده این کار حتی میتونه در حد جراحی یه چیزهایی باشه که اول تست بکنیم بعد ببینیم نتیجه داشته یا ندیجه نداشته خب دوستان توی این پاسلال چند دقیقه که دستتون آزاد باشه توضیحاتی رو من توی این رابطه بیشتر بدم خدمتتون از جمله یکی از مواردی که از همین مرسله استفاده می‌کنیم رو در رابطه با بعضی از دوستان که احساس خوبی نداشت یعنی احساس ندارن روی ارتباطی که داشتیم ما جرایی هست که در رابطه با تعریف افسردگی هست کسانی که احساسشون ضعیب باشه یا افسرده هستند یا تشدت ذهنی یا قفل ذهنی حالا در مورد افسردگی چون چیزایی که پیش میاد رفع این مسئله است یکی از ارتقاطی که پیش میاد رفع این مسئله هست ها تا اون موقع ببینید یه توضیحاتی رو باید داشته باشیم دوستان باید, باید با ما همکاری بکنند افسردگی خودش یک جریان انرژیست که در بدن را میفته یک جریان منفی است خب نحوه توزیییه اون مطابق صللا این شکلی رو که اینجا مطابق شکلی که اینجا می‌بینید یک توزیع جریان افسردگی داریم که افرادی که افسردن ضمن که این افسردگی تششاتتی داریم. افسردگی ذهنی داریم بعد ابزوردگی روانی بهش اضافه میشه بعد افسردگی جسمی این نظر نظر ماست حالا با روانشناسی خب ما یه مقدار داریم یعنی اول تششؤاتی بعد ذهنی اضافه میشه بعد روانی اضافه میشه بعد جسمی یعنی مرحله آخر شما یه آدم رو میبینید از روی جسمش از راه رفتنش از کلامش از همه چیزی میتونید یعنی ابزوردگی رو کنید دریاب بکنید در حالی که مرحله اول افسوردگی فقط تششواتی است افسورد دل افسورده کناد انجمنی را شما بغل دست آدم افسورده بشینید یا با یه افسورده صحبت کنید تششوه شما رو میگیره و شما احساس خمودگی میکنید خیلی شری. درسته یا نه؟, نه. خب لذا بعضی ها افسوردگیشون مرحله اوله یعنی تششاتی صرفند خود از نظر زهنی روانی میگن میخندن زنشون چیزی نیست افت نکرده ولی چند وقت بعد زهنشون هم خموده میشه چند وقت بعد روان هم خموده میشه زهنشون نمیدین بخنده برای چند وقت جسمش هم درگیر میشه حالا این رو توضیح میدیم تعریب میکنیم من مقدمتا تا جلسه بعدمون که این مسئله مفصل تر مورد بررسی قرار بدیم اینو بگم خدمتون حالا در همین رابطه هم دوستانی که این نیرو وارد میشه یه جا قفل میشه دقت بکنن تا من یه توضیح رو بدم خدمت شمون. آماده این؟ خب شروع میکنیم هر دوتا دست دستو بگیریم ببینیم چی میشه خب شروع میکنیم خیلی ممنون مشکل خب دوستانی که متوجه اسکن شدن ورود و کارایی درشون رو بلند کنن اونایی که متوجه شدن ممنون اونایی که اومد یه جا قفل شد یه جای قفل شد درشون رو بلند کنند خب اینو الان بیشتر باش کنید تا کجا؟ خب برس کنید که تا اینجا تا موچ ببینید مثلا تا زمان که تا موچ هست یعنی این محدوده در چه؟ محاصره یا از انرژی منفی افسردگی اشباهه که مثلا این خانم که پرمودن تا سرشونه میشه اینقدر خوب و اینو ادامه بدیم حالا از این مسئله ما میزان افسردگی یا افراد شما احساس افسردگی دارین در دا نداریم درسته یا نه شما دارید دا یا بله نمیشد یعنی میاد تا اینجا درسته یا نه حالا ما البته ببینید توجه کنید اینجا هدفمون نیست که اجازه بدین هدفمون نیست بگیم که شما افشرده این شما اینجوری این، شما اونجوری نه این به دردمون نمیخوره ما میخوایم که شما خودتون تونسته باشید تمام این کارها رو در مورد خودتون تزید تحلیل بکنید ما فقط نتیجه شو میخوایم دقت میکنید و بعد نمیخوام بیام میگیم که شما این شما اینقدر شما اینقدرین به درد نمیخوره فقط میخوایم خودمون در واقع در مورد خودمون تست بکنیم تجزیه تحلیل بکنیم و بعد بتونیم کار کاربر خوبی برای این قضیه باشیم درست شد یا نه حالا کسانی که متوجه شدن این اومد کاری شبیه جراحی نمیدونم این چیزای توی مایه انجام داد داشینو بلند کنن خب چطوری بود بله یک کاره اونجا انجام شد. خب کسی تو این ارتباط احساس بهبودی تو زمینه داشته جان. خشک شونه ها هم حالت به خودش حالت گس گس خاصی داشت ولی این بین جناق سینم یه اینجا اون حالت رو اینجا رو احساس می‌کنه. بله. ولی هی حسی گریم ندارم. خب حالا یعنی همراه با یک ببینید یکی از این تخلیه ها تخلیه روانه همراه با گریه خب کسانی که گریه بدونه که بخوان دیگه غیر ارادی گریه کردن درشون بلند کنن کسانی که حالت گریه داشتن خب حالت گریه داشتن این تو تخلیه هایی که صورت میگیره یکیش در مورد روان هست در مورد ذهن هست در این موردی که اینجا داشتیم خب درگیری و مشکل ذهنی خب که به دنبال به دنبال این تخلیه ها حالا احساس های بهبودی ظاهر میشه. یا الان متوجه هستیم الان چیزی متوجه میشین بله برای بله. تموم شد تموم شد یعنی راحت شدین، آزاد شد. ببخش. یا جانم اینجا اد. این قسمت توضی <تصفيق> میدم خدمتون. در مورد عدم احساس توضیح دادم یکی از دلایلش ابسوردگیش یکی از دلایلش تشتت ذهنی شدیده چند نفر تشتت ذهنی شدید دارن خب این تشتت ذهنی من نگاه نمی کنم من فقط میخوام شما در واقع بده. ببینید این تشتت ذهنی الان نمیذاره اصلا ما اینجا حواستون باشه اصلا ممکن ما در این لحظه در یک لحظه ما حتی پامون به یه جای اصابت بکنه و متوجه نشیم خب نگران نباشید دوستان عزیزمون خواهش میکنم نگران اصلا نباشید خب بذارید من بیان ببینم که مسئله چیه اصلا نگران نباشید خب چیه اون میکروفون چیه چی شده چی, می... چی میشه الان خیلی بده. خب چی می چی هست؟ من بتونم دستم داره میشکنه. خب. الان به... خیلی بده. باشه. خب. ببینید یکی کنترل درستون یعنی ندارن. کنترل درس. خب ببینید بعضی از افراد آمادگی برای بیماری های هیستریک دارن. بیماری های هیستریکو من تعریف بکنم خدمتتون توجه بکنین چیزی نیست. الان درست میشن. توجه اجازه بدین اجازه بدین الان درست میشه نگران نباش. بیماری های هیستریک بیماری هایی هستند که بدون داشتن علت فیزیکی آرزه رو روی بدن اعمال میکنند مثل کوریه هیستریک چش کاملا سالمه فلج هیستریک دست سالمه پا سالمه ولی حرکت نمیتونیم بدیم و حالا فلج هیستریک کری هیستریک گوش سالمه همه چی برای نمیشویم حالا چرا اتفاق میفته در جلسات بعدی صحبت کنیم؟ بعضی از دوستان در اسکنشون آمادگی یا حالا سابقه مشکلات هیستریک داشتن و یا اینه که آمادگی برای مشکلات هیستریک دارن رخ میده. خب و شما ممکنه با این نظیر این قضایا چیکار بکنید؟ برخورد بکنید و ایشون اون پروسه بهبودشون رو که از درون برنامش موجوده داره چی میشه این برنامه پاک میشه این برنامه رو در واقع در جهت اینه یعنی که این قضیه منتفی بشه چون افرادی که به اصطلاح این چیزو دارن ممکنه با کوچکترین شوکی خب با کوچکترین ناملایماتی مسئله हिस्ट्रीکه رخ بده و وقتی رخ بده دیگه برگردوندن نه برای این مجموعه برای حالا مسئله کاری که به طور معمول روشون انجام میشه کارش بسیار مشکل خیلی مشکل در از یه پدیده فیزیکی خب بنابراین با برخورده با مسائل شبیه به این فقط بدونید که یه خود زمان داره این تخلیه رو در واقع پیش میاره و صورت میگیره یک ارتباط جان در مورد این موردی که اینجا مسئله داره مسئله هست مشکلات که به ذهن مربوط میشه مسائلی که مشکلات توهم شامل اسکیزوپرنی یا اسکیزوپرنی مسائل شامل وسواس و فوبیا تمایل به خودکشی غیر عادی و این مسائل که زمینه ذهنی داره و حالا باش آشنا میشین این معقوله،, این معقوله خاصیست که باش آشنا میشین خب یک ارتباط دیگه برقرار بکنیم باز با همون مورد شعور کیهانی دوباره چشم بسته اون مورد رو تجربه بکنیم تا روی این کیسمون در اینجا کار بکنیم تو این فاصله جانم نه اون ببینید نه ببینید وقتی که گفتیم هوشمندی دستی چیزی نمیخواد آ بسته هیچ هم خاصی هم ما انجام نمیدیم خودمون زیر نظر داریم ببینیم چه اتفاقی میفته خوب حالا یا با چشم باز یا با چشم بسته اما اینجا نیروی کیانی برای این بود که ما در واقع با همدیگه تبادلی داشته باشیم البته راجع به همین مطلب توضیح بدم خدمتون اونم اینه که این نیروه کیانی رو شما با اسامی دیگری شنیدید مثل پرانایاما مثل کی شی با این اسامی شنیدین و در هایی مثل فرزا یوگا میان با تخیل طی سالها و با این تخیل که ما با تنفسی که میکنیم پرانا رو میکشیم در درون درست شد یا مثلا در تایچی با انجام حرکاتی خب حرکات نرم و آرامی طی سالها و با تخیل تخیل میکنن که نیروی پرانا رو از محیط گرفتن و جز به خودشون کردن در حالی که الان برای شما احساس زدیم این نیرو رو شما الان دستتون رو دو حواتکون بدید پرانا رو احساس می‌کنید. انجام بدید دوستان لطفا انجام بدن براید براید براید بله احساسش بلاخره نه احساسش شما انجام بدید تا من توضیح بدم خدمت احساس بهره برداری شما انجام بدین؟ نه نمیشه ببینید شما الان دستتون رو تکون بدید ببینید که چشمیتون رو ببندین قشنگ هواسون رو جمع کنید ببینید با این نیرو برخورد میکنید یا نمی کنید خب هست یا نیست؟ دوستانی که متوجه شدن دستون رو بلند کنن؟ بله خب حالا یک موضوع هر کسی دستش رو تو هوا تکون بده پرانا رو جذب میکنه؟ اگه این دو باشه دیگه در تایچی چرا میان ده سال یا در یوگا خب ما نفس میکشیم پرانان میان داخل دیگه چرا در مثلا یوگا سالها با تخیل خلا باشه باشه اما اینجا شما الان احساس میکنید جذب میشه تاون شده رفت ما کاری با جا نداریم آب را گل نکنیم شاید این آب روان میرود پای سپیداری که در آن فروش یدندوه دلی گرما احساسه مختلف یعنی در واقع دست شما توی یک سیالی حرکت میکنه حالا فرق شما با افراد بیرون فرق پیدا کردید که, که افراد بیرون پرانان رو حسنی میکنن شما الان دستتون رو تکمون بدید متوجه میشین حالا جذبم میشه کاری ندارم اصلا با این بخشش دیگه کاری نداریم خب بنابراین این مادرها رو ما به صورتهای مختلفی حالا ازش میتونیم بهره مند بشیم و در اختیارمون هست دیگه نیاز نیست بریم تخیل کنیم تصور کنیم کار کنیم چیکار کنیم تموم شد بیایم جان نه نه نه اینو اینا, اینا اشانتیونای مادراس اینا اشانتیونه اینا اشانتیونه خب حالا یک بار دیگه اسکن با هوشمندی کهانی با هوش جمعی یا با اون شبکه شروع کهانی چشما بسته دستی چیزه نمیخواد یه بار اونو امتحان بل اونام صبر صبر تا افسادگیشون رفت بشه بحث تشدد ذهنی خود ارتیام پیدا کنه و قبل ذهنی هم تعریف میکنم یا تعریف بکنیم قبل ذهنی ببینید ما از دوران کودکی نرم داریم در ناخداگاهی یه نرم داریم که بهش واقفیم خداگاه ما میگن که به این علاقه دارید میگین بله بون بله نخر بله اما یک نرم داریم در ناخداگاهی و بهش تاسی نداریم این نرم رو از دوران کودکی روی ما برنامهریزی کردند مثلا از دوران بچه گفتند بچه عاقل باش بچه عاقل باش بچه عاقل باش درسته یا نه اینجا چی نوشته شده؟ عقل، عقل، عقل. بعد اومدیم پشت سرش عقل تعریف شده. عقل یعنی دو دوتا، چهار تا. ما برنامه ریزی شدیم. برای چی؟ برای پله عقل درسته یا نه؟ وقتی به پله عشق می وقتی به متافیزیک می یه بحثی خارج از دو دوتا چهار تا. نرمافزار دومی فیلترش میکنه اجازه عبور به اطلاعاتش نمیده میگه همچین چیزی نیست لذا سانسور میشه اطلاعاتی احساساتی سانسور میشه نرمافزار دومی میگه نیست همچین چیزی نمیتونه باشه ما برنامهریزی غلطی شدیم حتی روی پله عشق هم اون عشقی رو که ما تجربه می کنیم عشق عقلانی است عشقی است که عقل توصیه میکنه ببینید در این خصوص ما عشق عشقی که داریم عشق عقلانی بگیم عشق عشقانی بگیم عشق عقلانی عشق است که عقل توصیه میکنه میشه دوست داشتن خب این میشه دوست داشتن عقل توصیه میکنه میگه اینو داشته باش تو نباشی من میمیرم تو نباشی من میمیرم عقل میگه این اگه نباشی تو میمیری پس اینو داشته باش عشقی که انسان تجربه میکنه عمدتا عشق عقلانی است عشق اشمانی یه داستان لیلی و مجنون و خسرو شیرین و لیلی میدونم رومئو و ژولیته این حرفا اونها در واقع این موضوع رو که حالا تعریف خاص خودش رو داره و خاص خودش رو داره حتی اونجا هم ما رو فلش کردن یعنی برنامه رزی که روی ما دوران کودکی انجام دادن ما بلجیم یک بخش یک بود اونجا برنامه رزی رو برنامه میپذیره برنامه های اقلانی میتونن بیان داخل برنامه های بعضا فرد فرد فرد فرد میکنه خیلی ها متافزیک و نرم افزاره آگاهشون یعنی اون خداگاهی قبول داره اما ناخداگاهی همچی چیزی رو برنامهی رو قبول نداره لذا فیلتر میکنه سانسور میکنه نمیذاره که ما به احساسش نزدیک بشیم اما شما چه احساس بکنید چه احساس نکنید در وصل کاربری اصلا مشکلی نداره حالا میگه تجربه میکنید خب همونی که میگه من احساس نمیکنم رو دیگری کار میکنید اون احساس میکنه ولی خودش سانسوره تا این قبل شکسته بشه در هیپنوز آزمایشی هست که یک سری چیزها رو روی یک میز میچینن و بعد فرد رو میبرن در هیپنوز و به اون القا میکنن که یکی از این چیزها روی این میز نیست مثلا یک گلدونه گذاشتن به اون القا میکنن همه چیز هست به جز این گلدونه بعد که از هیپنوز میالنش بیرون میگن روی این چیه؟ همه رو میبینه غیر از اون گلدونه یعنی اینجا قابلیت سانسور کردن داره مثلا میتونن چیز کنن اسم خودشون نتونه بگه یه چیزی رو به میرسه سانسور بشه لذا ما سانسور شدیم در قبال مسئول متافیزیک چی شدیم؟ سانسور شدیم الان اطلاعات به اینجا که میرسه سانسور میشه خیلی هاش ما این قفل رو باید چیکار کنیم؟ بشکنیم. البته در کاربری اصلا مشکلی نداری یعنی اصلا ما مردودی نداریم. یعنی شما به عنوان اینکه کاربری بکنید اصلا مرجود نداریم. درست شد؟ اما خودتون اگر قرار باشه احساس بکنید، باید این مسائل و مشکلات رو بیایم حل کنیم. اون قفله رو باید بشکنیم. این افتشدگی باید مسئلهش حل و فصل بشه. تشدد ذهنی یه سرسامانی پیدا بکنه، اگر اگه خیلی شدیده. البته در کل ما تشدد ذهنی داریم، ولی یک به حدی اب نداره. اگه حد بیشترش نمیذاره دیگه که اصلا یه لحظه اینجا ما حضور داشته باشیم. نه بله. ببینید، از کردم خدمت شما که این مسئله و این مقوله مراتب داره و این افسردگی شما تشنعاتیست. و سری هم رفع میشه و مشکلی این البته ما حالا آماره بعدی هفته بعدمون رو هر هفته آمار میگیریم هر هفته ایدهی افسرده دستشونو بلند میکنم میگن آقا حل شده جز شما مجال بدین و عجله نکنید همه مسائل ما بین ما حل و فصل میشه جانم الان قرار شد که ارتباط راهدی رو تا هفته دیگه انجام بدین یه مقدار با مفهوم ارتباط و راه دور و نزدیک و الان ممکنه شما فکر کنید اینجا هستید حالا اینجا اینطوره خب بعد راه دور نشسته خوابیده در اینجا در اونجا در شرق در قرب همه اینا این ارتباطات برقرار میشه و یه چیزایی برامون معلوم میشه بعد هفته دیگه دیگه می که حالا به عنوان اینی که ما خودمون شخصا مستقلا از این هوشمندی چه استفاده میتونیم بکنیم. رو چیکار میکنیم تجربه خواهیم کرد خوب جان شما مشکلتون حل شد خوب الان خوب دیگه بهتر شدین یا نه اینو بگیریم درستتون یه گزارش به اون بدین این گزارششون به دردتون میخوره خوب ببینید چه حالی بودن تخلیه شد الان نگاه بکنید. خب چقدر تغییر کردین؟ بفرمایید. خیلی بهتر شدن خب خیلی بهتر احساس خیلی بدی تو سینم پیدا کردم هی hey, احساس که الان سینم داره منفجر میشه بله. بعد خب. دوتا دستام یعنی از بازو به بعد دیگه فکر میکرم داره کنده میشه دیگه به حدی درد شدید و لرزش شدیدی داشت خب که الان دیگه خوب شد چند نفر با دیدنشون مسترب شدن؟ دست شدن؟ واقعا انسانسور نکنید دستونو بلند کنید دست کن. ببینید حالا مورد اول چرا من مضطرب نشدم به دلیل اینه که ما تعاریف کلی رو میدونیم ما میدونیم که الان در ارتباط هوشمندانه هستیم داره رویشون کاری انجام میشه بی سابقه اتفاقی برایشون میفته که هیچ عاملی واقعا نمیتونه اونو پیش بیاره یک بیرون ریزی یک کشیدن پشتیبانی این خوشمندی هستیم دستپاچگی نمیشیم درسته؟ چون میدونیم ما از طریق یک هوشمندی پشتیبانی و ساپورت میشیم لذا هیچ دستپاچگی نداره من میدونم که ایشون داره تخلیه میشه این خانم داشتن تخلیه میشدن و در بیام مصاحبه بکنم که بیام, بیام خب بتر شدین راه دور بگی نداره بهتر شدین خب در واقع ببینید ایشون چه تقلیعی داشتن ولی کاری که برای ایشون انجام میشه این تقلیع شما دیدید واقعا نابسامانی بود یه ولی اجازه بدین بیرون ریزی یعنی خدمت چطوری بگیم یعنی یه چیز نابسامانی رو از یه وجودی بکشیش بیرون این یعنی خدمت یعنی یه چیزی که با هیچ طریقی قابل انجام و قابل اجرا نیست درست شد یا نه بنابراین من یه خواهشی میخوام بکنم که این بیرون رو استقبال بکنید یعنی وقتی اتفاق میفته شاکی نشید که ای وای ببینید چی شد و شد ممکنه که ایشون اصلا از اومدن به این کلاس اصلا منصرف شدن شدین یا نشدین؟ الان نه اون موقع بله خوب. بنابراین بله بله یعنی در واقع ایشون اینجا آمدن ترسیدن و اگر نه بکنم خلاصه این ماجرای قضیه است که ظاهراً در یک مواردی ممکنه بیرونیزی شدید باشه مثل این مورد حالا یک در هزار توی موضوع فرادرمانی ممکنه برخورد بکنیم باش ولی در عمل خدمت شده یعنی ایشون به زودی متوجه میشن که چه خدمت بزرگی بهشون شده یعنی برگردیم بیوگرافیشون رو نگاه کنیم مشکلاتشون رو نگاه بکنیم و این بیرونریزی چه چیزایی رو اومده حف کرده؟ ن سامان اره کرده. وقت با هم به این عجی میرسید که عجب خدمت بزرگی این هوشمندی در واقع انجام داده. درستا نه ببینید نوع مشکلشون با شما فرق میکنه. ایشون به این بیرون نیاز داشته شما به یک بیرون بله بدنتون ریخته بیرون خب چند نفر بدنشون کهیف زده؟ چک بکنن؟ چند افر بدنشون بیرون ریخته؟ چک بکنید؟ منظورمون رو همین بابا اگه من برم مثلا تو خونه که شما میگید تحقیم کنم حالا بدتر بشه اون وقت چگار کنم؟ اینا علامت بهبودی یا بدتر شده؟ بله باید ببینید مجموعه این تجارب که الان با هم دیگه اینجا سعی کردیم داشته باشیم میخواد به ما بگه دستپاچه نشیم ما در پناه یک حوشمندین قرار داریم من حالا باز جلسه دیگه بیشتر صحبت می کنم. اول می بریم یه تجربی رو به دست بیاریم، بعدا میام راجع به صحبت بکنیم. لذا در این خصوص اول اینه که دست پاچه نشی. اعتماد اعتماد داشته باشیم البته این خوب یه مطلبی سینه که به حرف نیست باید بیام تجربه به دست بیاریم تا به اون اعتماد برسیم. ولی فعلا تا اون که میشه سعی کنیم دستپاسی نشیم آرامشیم اون چیز نشه فکر نکنیم اتفاق عزیب غریبی داره ار درد میوبته و دست ما خارج میشه نه اینجوری نباشه بله. بله ببینید این به هر حال شما عرض کردم خدمتون اولا قصاص قبل جناعت نکن. معلوم نیست که ما مثل ایشون بشیم یا مثل ایشون بشیم یا مثل بشیم یا مسیح. اصلا چیزی نشه خیلی درصد قابل توجهی بدون یک مشکلات زیادی یک بیرونیزی میشه تمام میشه میره پیکارش. کارش. بنابراین اولا اونطوری فکر نکنیم که های الان میاد. الان بیرونیزی شروع میشه. الان مسئله میشه. الان خب, خب اینجوری نباشه. این خب خودش تلقینه به ما نباشه. ما باید عادی رفتار بکنیم. عادی رفتار بکنیم اجازه بدیم که این هوشمندی روی ما کار بکنه. این در واقع خود درمانی صورت بگیره این اتفاقات بیفته قبلم هیچ ذهنیت بعدی ایجاد نکنیم خب این از این مسئله خب حالا بیایم یه تجربه دیگر رو میخوایم بازم تو وقت باقی مانده یه وقت دیگری رو یه تجربه دیگر هم داشته باشیم یه تجربه دیگه داشته باشیم سؤالات نداره عب نداره عب نداره ما که گفتیم شما بکر شما <تصفيق> <تصفيق> خب ببینید من شهرمندم میدونم دوستان دوستان زیادی سوال دارن و خلاصه مونتا شما اگر بذارید این تجارب تقدیم بشه جواب سوالاتتون رو خیلی هاشون میگیرید فقط به دقت توجه بکنید ببینید من میخوام راجبه یه نیروی دیگه هم صحبت کنم نیروی پولاریتی خب شما شتاب داریم ولی منتظریم ایشالا چاپ بشن که در افتیارتون قرار میدیم خب در مورد نیروی پولاریتی شما پولاریتی درمانی شنیدین اون که با دست کشیدن و اینا انجام میشه یا از همود یا انرژی درمانی اصلا از همین موضوع از چند دقیقی قبل از حالا سر زبان ها افتاد بحث نیروی پولاریتی که پولاریتی درمانی رشته دانشگاهی. دانشگاهی حوزه پولاریتی بدن چندین ده است که مورد شناسایی قرار گرفته و خود این ماجرا یک روش درمانی است یعنی همون که گفتیم یکی از تعریف‌های بیماری اینه که بیماری زمان حادث میشه که حوزه پولاریتی بدن به هم بخوره یک بودی. حوزه پولاریتی به این واسطه وجود داره که بدن ما یک سیستم الکتریکی و در این سیستم الکتریک جریان چی داریم؟ الکتریک جریان الکتریک تو این بدن هست وقتی که جریان هست حوزه خواهد داشت درسته یا نه؟ این قانون فیزیکه وقتی جریان هست حوزه داریم حالا چه در مورد یک سلول چه در مورد کل بدن ما این حوزه وجود داره حالا سیستم الکتریکی بدن بستگی به تبادلات یونی و الکترونی بدن داره یعنی هر جا الکتریک داریم تبادل یونی و الکترونی باید داشته باشیم داریم در بعضی افراد سیستم تبادل یونی و الکترونی حالا در یه عضوی در بعضی از اعضا مشکل داره و به خوبی انجام نمیشه لذا این حوزه تغییر میکنه ضعیفتر میشه و پولاریتی درمانگر با دست بردن توی این حوزه خود... کف دست خودش حوزه داره اونم حوزه داره این دوتا حوزه میرن تو همدیگه تو جریان چی میشه؟ ایجاد تغییر میکنه این ایجاد تغییر باعث میشه تبادل یونی و الکترونی را بیفته و اون از اگر مشکلی از این بابد داره اشکال چی بشه؟ بشه. پس این در واقع یک پدیده علمی است این انرژی درمانی یا این پولاریتی درمانی یک پدیده در واقع علمی است اما ما چی کار می کنیم؟ ما که از این طریق استفاده نمی کنیم. ما وقتی ارتباط میدیم اگر مشکل تبادل یونی و الکترونی باشه به خودی چی میشه؟ طرف میشه اگه مشکل چاکرا باشه بدطرف میشه چند افر کار رو چاکرا هاشونو متوجه شدن اونه که با چاکرا هاشنا هستن دستشونو بلند کنن خوب حالا اونه که آشنا هستن بقیه هاشنا نیستن نمیدونن چی هست ولش کنیم الان ما یه ارتباطی برقرار انقرار میکنیم. در این ارتباط تبادل یونی و الکترونی زیر وصله چطر این قضیه هست شما دستتونو مقابل هم قرار بدین. ببینید کف دستتون چی قرار میگیره شما شروع بکنید بله دستان سان دستتون مقابل هم شما مقابل هم شما کارتون با من نماشید خب خیلی ممنون خب دوستانی که متوجه شدن دستان بلند کنن حالا بله خیلی ممنون حالا همینطوره که با هم کار بکنیم خب ببینید تو ارتباطات بعدی هی مرتب این حوضه ببینید تبادلات یونی و الکترونی بدن خوب دقت بفرمایید دوستان عزیز توجه بفرمایید با ادامه کار این تبادلات یونی و الکترونی هم منظمتر مرتبتر و حوزه ما قوی قوی و قویتر میشه درست شد اینو بعدا هم میتونیم بازم با هم دیگه تست کنیم ما دیگه با ما در فیدی که با همین ارتباط برقرار کنیم میبینید که این خیلی این حوز قویتر شد خیلی گسترده تر شد وروش شد این فقط برای تست ما نیازی به این ارتباطات نداریم چون هوشمندی رو داریم کاری دیگه نمیخوام لازم نیست بریم دست بکشیم دام چیکار کنیم از اینجور کارها فقط جهت آشنا شدن با مطالبه حالا توضیحات بیشتری راجبه پولاریتی تراپی جهت اطلاع شخصیتون که بدونید هر کدوم از اینا از چه چیزی استفاده میکنه و خصوصاً در جریان روز دنیا در این موارد قرار بگیرید و بدونه که در دنیا راجبه این مسایل چه خبره البته راجبه تبه مکمل یک مطلبی رو خدمت دوستان دادم مطلب رو با دقت مطالعه بفرمایید جزوتون با دقت و جلسه بعدم هم همراهتون جزوتون باشه یک جزوهی دارید اگه نگرفتید بگیرید فراموشتون نشه حتماً خب اجازه بدین چند دقیقه وقت باقی مونده من توضیح بدم راجع به ارتباطاتمون از امشب ارتباطات راه دور رو با هم تجربه میکنیم ارتباطات راه دور 24 ساعته برقرار هست اما اجازه بدین من توضیح بدم پس ارتباطات 24 ساعته برقراره یعنی شما هر زمانی به این منزله چشم میدونو ببندید ببینید چه خبری میبینید که داره روتون کار میشه نشسته ایستاده خوابیده تو اتوبوس هواپیما هر چه میبینید که این کار داره ادامه پیدا میکنه اما یه پیمان با هم ببندیم قرار بذاریم قرار ساعتی که چند تا به ما ساعت بدید در طول 24 ساعت چند تا ساعت به ما بدین اگه این نشد اون اگه اون نشدین بالاخره یکی دو تا تایمش باقی بمونه این ساعت ها قرار ساعتیمون میشه که شما سر این ساعت میه تو ارتباط. خب نحوه کار این قضیه رو شما جلسه بعد آشنا میشین چون خودتون همین کارا رو برای دیگران قاید کرد. نه اینه که ما الان شما که تجرینی همین ساعت ها رو به شبکه اعلام میکنیم درست شد حالا نین تو ذهنتون بگیین که این تایری یعنی 24 ساعته بیدار میمونه مونه رو میده نه. من همین الان همه این ساعت‌ها میره تو شبکه و شما هر زمانی سر ساعتاتون بیاید ارتباطاتون برقرار و اسکنتون ادامه پیدا میکنه نتایجش هم هفته دیگه با هم بررسی میکنیم که چه کار کردیم تو این ارتباطات چی شد فقط خواهشان خواهشان همکاری بکنید اگر میخواید نتیجه براتون معلوم بشین تشریف نبرید هفته دیگه بیاید بگید که ای مگه ما ساعت داشتیم یا از این جو چیزا این مسئله اینجا عرفان عملی است نیاز به کار عملی داره دیگه حرفمون تموم شد حالا حرفت به حرف داریم ولی تو مسئله بحث ارتباط دیگه حالا تجربه بکنین تا هفته دیگه تشریف بیارید دوباره تئوری عمل تئوری عمل اینا رو با هم دیگه بریم جلو بنابراین اجازه بدی من همه رو بگم اگر چیزی کم و بود بعد خب شما ساعتهای رو تمیدید مثلا فرص کنید یه ساعتی دادید ده شب، ده صبح مثلا چار بعد از ظهر نمی نمیدونم هشت شب، دوازده شب مثلا شما رأس این ساعتها ارتباطتون رو برقرار میکنید شروع با شماست اما خاتمه با شما نیست اسکن شما که شروع میشه ممکنه مال یکی پنی دقیقه طول بکشه یکی دو ساعت طول بکشه یکی یه سه ساعت یکی یه ساعت تا میفهمین که من لابد خدمتتون میگم الان مگه شما متوجه اسکن نشد که روی قلبتون داره کار میشه روی تنفستون روی مغزتون روی اونو ما داریم میگیم شروع به کار که میشه شما تا اون جایی که میتونید از نظر زمانی دنبال بکنید اما اگه نه این وقت عجله دارید باید سر کار نمیدونم اینجوری پنگ دقیقه دقیقه یه رو بنشستید میبینید دیرتون میشه میتونید چیکار کنید؟ راها کنید برید به کارتون برسید تا اون جایی که همکاری بکنید بهرشو خودتون خواهید برد بنابراین روزی چند بار و اینا محدودیت نداره ساعتو من اصلا شاید ارتباطی نداشته باشم توی این رابطه شما خب شما کارتون به من نباشه ما بینایت حلقه داریم بینهایت افراد تعداد زیادی همین الان که ما اینجا هستیم تو حلقه های متعدد شما فعلا توی یه حلقه هستین تو حلقه های متعدد به منظور های متعدد به و حالا شما همین ها رو آشنا میشید. اما الان اونجا ممکنه زهنتون کامفیوز بکنه و قاطب بکنه که این چجوری میخواید بشه اجله چجور... نکنید. بذارید شما مثلا هفته دیگه این مکانیزم رو کاملا آشنا میشید. چون خودتون انجام خواهید داد دقت فرمود ببینید هر کدومت دوستان چند تا ساعت مشخص بکنن مشخص اون ساعتی که شما آزاد هستید شما وقت دارید اون ساعت ها رو چیکار بکنید به ما روی تیکه کاغذ حالا یا کاغذی که اینجا هست یا نه روی تیکه کاغذ به من برای اینکه معطل نشید الان بنویسید کاغذ ها رو بدید ساقیا جام دم آدم ده که در سیرطریق هر که آشق بشنه آمد در نفاق افتاده بود. همه رو به خدا می سپریم. خدا نگهدارتون خداحافظ. خیلی متشکر. مرسی. ممنون. متشکر.